گرامیان درود بر شما فایل آبایی هفتم از کتاب برهان علیت برهانی در رد وجود خدای ادیان و روز جزا نوشته نونفخ رو با هم آغاز می صفحه و یک ادامه هفته ششم گفتگوی بین قهرمانان داستان عنوان علت الالل و بعضی خصوصیات آن مؤمن. اکنون ما به این نتیجه می رسیم که یک علت اول باید وجود داشته باشد. علتی که اگر نبود، هیچ پدیده ای به وجود نمی آمد. نام آن را واجب الوجود می بزاریم. اما این علت اول یا واجب الوجود یا علت الال از جهاتی نمی تواند شبیه پدیده های دیگر باشد. در واقع برای اینکه این واجب الوجود، خودش نیازی به علت نداشته باشد لازم است تفاوتهایی با های دیگر داشته باشد اینکه این علت اول چه خصوصیاتی دارد برای ما قابل فهم و قابل تحقیق نیست اما میتوانیم بگوییم که چه خصوصیاتی نباید داشته باشد خصوصیاتی که فقط پدیدهها دارند را نباید داشته باشد چون نباید معلول باشد و نباید نیاز به علت داشته باشد ناباور و آن خصوصیات چیست؟ عنوان آیا واجب الوجود میتواند زمانمند و متغیر باشد؟ مومن یک پدیده زمانمند این استعداد را دارد که دچار تغییر شود یعنی حتی اگر دچار تغییر هم نشود و بی تغییر بماند همین که زمانمنده است به این معنی است که وجودش پی در پی تکرار می شود. فرض کن این خودکاری که در دست من است هیچ تغییری نکند و مختصات مکانی و شکل ظاهریش دچار هیچ دگرگونی نگردد. اما اگر زمانمند باشد چنان که هست، مختص زمانیش تغییر می کند. یعنی خودکار لحظه قبل هستی خودش را دارد و خودکار لحظه کنونی یک خودکار جدید با هستی جدید است. هستی جدید این خودکار از این لحاظ جدید است که اگرچه همه مختصات و خصوصیات خودکار قبلی را دارد اما مختص زمانی آن جدید است. پس یک چیز جدید به وجود آمده و به عبارتی هر لحظه هستیش نو میگردد. این هستی نو خودش یک پدیده جدید است و نیاز به هستی بخش دارد. خودکار لحظه تییک هستی و مختصات خودش را دارد. در لحظه تییک خودکاری با مختصات لحظه تی دو وجود نداشت. خودکار با مختص زمانی تیدو در لحظه تیدو به وجود آمد. ما نمیدانیم که علت هستی این خودکار جدید در لحظه کنونی چیست؟ شاید علتش خودکار لحظه قبلی است و یا شاید چیز دیگر است. علتش هر چه باشد مهم این است که به هر حال نیاز به یک علت دارد. یعنی یک موجود زمانمند به دلیل نو به نو شدن هستیش در هر لحظه جدید نیاز به علت دارد و اگر واجب وجود هم زمانمند باشد، خودش نیاز به یک علت و داشته است. اگر واجب الوجود زمانمند باشد پس ما با یک واجب الوجود ازلی طرف نیستیم. او هم در هر لحظه نیاز به خلق شدن نو به نو دارد. هر لحظه از هستی او که پا به وجود می‌گذارد، یک پدیده است و نیاز به علت و خالق دارد. پس هستی نیز باید از یک علت العلل دیگر نشأت یافته باشد. داشتن عمر و زمانمندی برای واجب الوجود غیر ممکن است و او باید بی زمان باشد تا بتواند علت اول باشد. واضح هست هر هستی که دچار تغییر و تحول می شود نیست از جنس پدیده هاست. چرا که هر حالت جدیدی که در این تغییر و تحول برایش ایجاد می شود حالتی خواهد بود که قبلا نبوده و نیاز به علت داشته است چنین واجب الوجودی خودش نیاز به یک علت العلل داشته است و دیگر نمی شود نام واجب الوجود روی آن گذاشت عنوان آیا واجب الوجود می تواند نقص داشته باشد؟ بنابراین واجب الوجود هیچ تغییر و تحولی هم نباید داشته باشد. و مثلا اگر واجب الوجود علم دارد، نباید به علمش چیزی اضافه شود و اگر قدرت دارد، نباید به قدرتش چیزی اضافه شود و یا از آن کم گردد. علم او کامل و بی‌نقص است و قدرتش نیز کامل و بی‌نقص است. ناباور اینکه علت اول نباید زمانمند باشد قبول ولی چرا از بینقص بودن آن صحبت میکنی چگونه ثابت میکنی که آن نباید نقص داشته باشد عنوان ماهیت مومن هر موجود محدودی دارای ماهیت است ناباور ماهیت چیست منظورم این است که تو کلمه ماهیت را به چه معنی بهکار میبری و چطور آن را به محدود بودن ربط می دهیم؟ مومن، این میز 20 کیلوگرم وزن دارد. به عبارتی 20 کیلوگرم جرم دارد. جرم این میز بخشی از ماهیت آن است. وقتی میخواهیم هستی این میز را تعریف کنیم باید از جمله به جرم و ابعاد آن اشاره کنیم. جرم این میز 20 کیلوگرم است و اگر 19 کیلوگرم بود دیگر این میز نبود و میز دیگری بود. اگر ابعادش آدش جز این بود که هست، دیگر این میز نبود و میز دیگری بود. حتی پارا فراتر فراتر میگذارم و میگویم که اگر مختصات مکانی و زمانی آن جز این بود که الان هست، دیگر این میز این لحظه نبود و میز دیگری بود. ماهیت این میز در مختصات زمانی و مکانی و ابعاد و جرم و رنگ و سختی و دیگر خصوصیات منحصر به فرد آن است. منحصر به فرد بودن آن در این است که به هر کدام از این خصوصیات یک عدد یا یک کیفیت مشخص و محدود نسبت داده می شود. مثلا مختصات مکانی و زمانی و جرم و سختی و ابعاد این میز هر کدام توسط یک عدد مشخص می گردد و هر کدام از این اعداد، شاخصه یک محدودیت درباره این میز است. این میز یک متر عرض دارد و یک متر و بیس سانتیمتر عرض ندارد. نوت سانتیمتر هم عرض ندارد. عرض آن یک متر است. همین و بست. این میز در این لحظه از زمان که آن را لحظه T1 می در این گوشه از اتاق و دارای این مختصات بیجه مکانی است. اینها حدودی هستند که اگر به هم بخورند ما را با هستی جدیدی مواجه می کنند. چنانکه با گذشت زمان و مثلا در لحظه تیدو 2 با هستی جدیدی مواجهیم که با هستی میز تی متفاوت است. رنگ این میز لحظه کنونی این است که میگینی نتیره تر و نه روشنتر خلاصه اینکه وقتی بپرسیم این میز لحظه تییک چیست، متوجه میشویم که باید همه حدود و کیفیات میز را برشموریم تا در نهایت به تعریفی برسیم که آن تعریف تنها شامل این میز در این لحظه خاص شود. به محض اینکه قسمتی از این تعریف تغییر کند، ما با میزی دیگر مواجه خواهیم بود. می بینی که در جواب دقیق چیستی یا ماهیت این میز به برشمردن اعداد مختصات و کیفیات دقیق آن می و هیچ کدام از این اعداد و کیفیات نمی توانست عددی با کمی تفاوت یا کیفیتی با کمی تفاوت باشد و هنوز پاسخی که جهت چیستی میز لحظه T یک داده این منطبق بر همین میز لحظه تی یک باشد. برای تعریف دقیق این میز به اعداد و کیفیات محدودیم. پس می توانیم بگوییم که چیستی یا ماهیت این میز به این حدود محدود است. از این جهت، ماهیت اشیا با محدودیت آنها یکیست و لذا می گوییم هر شیعی که ماهیت دارد پس محدود است البته کلمه ماهیت یا چیستید در بحث ما این معنی را دارد که گفتم و می تواند در مباحث دیگر به معانی دیگر بکار رود. ما در بحث خودمان به آن معانی دیگر کاری نداریم حال؟ ما به هر موجودی که چیستی یا ماهیتش با شرح این محدودیت‌ها تعریف می‌شود می‌گوییم ممکن وجود. برای یک شی هر ماهیتی را می‌توان فرض کرد یک میز فرضی می‌تواند اینجا باشد یا آنجا باشد می‌تواند 20 کیلوگرم باشد یا 30 کیلوگرم باشد تمام اینها ممکن است حدود می‌توانند هر عددی به خود بگیرند و اگر این اعداد هستی به خود بگیرند یک هستی با حد و حدودی معین پدید میآید. یک میز مفروز با ابعاد محدود مفروز و جرم محدود مفروز در حدود مکانی و زمانی مشخص و مفروز اگر هستی به خود بگیرد به یک میز واقعی تبدیل می شود وگرنه میز واقعی نخواهیم داشت. این امکان را، امکان وجود و این گونه را ممکن الوجود می‌نامیم اما ما گفتیم که علت اول از ازل بوده است و باید نیبود تا بقیه هستی ایجاد شود پس آن هستی اول یک واجب الوجود است نه ممکن الوجود هر آنچه چه حد و حدود دارد ممکن الوجود است و واجب الوجود یا علت اول حد و حدود ندارد نقصی هم ندارد چون نقص داشتن یعنی کم داشتن چیزی نقص یعنی کم داشتن هستی آنکه وجودش حد و حدود ندارد معنی ندارد که وجودش کمیت داشته باشد و قابل اندازهگیری و کم و زیاد شدن باشد تا چه رسد به اینکه نقص داشته باشد نقص در مورد او معنی ندارد چنانکه حد و حدود در مورد او بیمعنی است توجه داشته باش که او اندازه های بی نهایت بزرگ و بی نهایت زیاد به معنی عددی ندارد چون از بی نهایت میتوان چیزی کم کرد و آن را دوچار تغییر کرد. هستی واجب الوجود هرچه باشد قابل اندازگیری نیست تا اندازش کم، زیاد، خیلی زیاد یا بی نهایت زیاد شود. حد و کمیت چه کم و چه زیاد و چه بی نهایت برای او بی‌معنی است. ناباور من نفهمیدم که چرا یک چیز ممکن الوجود نباید بتواند ازلی باشد. مؤمن پس این همه دلایل مرا نشنیدی؟ ناباور درست است که یک فرض از یک هستی محدود ممکن است محقق شود و آن هستی به وجود آید یا ممکن است محقق نشود. و آن هستی به وجود نیاید و یک فرض باقی بماند اما اینکه یک چیز به این معنا که گفتی ممکن وجود باشد دلیلی بر این نیست که نتواند ازلی باشد تا علت العلل بقیه چیزها واقع شود در واقع تو ثابت نکردی که در دنیای واقعی غیر ممکن است یک چیز محدود و دارای ماهیت ازلی هم بوده باشد اینکه گفتی علت اول نباید زمانمند باشد را قبول می کنم ولی اینکه یک چیز محدود نمیتواند تواند ازلی باشد را ثابت نکردی فقط کافی یک چیز محدود دارای حدود زمانی نباشد یعنی وجودش هر لحظه نو نشود اینکه دارای حدود دیگری غیر از زمان نباشد تا بتواند علت اول باشد از این روش که گفتی برایم اثبات نشد گویا تو فکر میکنی هر چیزی که در هستیش حدودی مانند جرم، ابعاد یا هر چیز دیگر باشد حتما حدود زمانی هم دارد و همین ایجاب میکند که برای علت و بودن امکان داشتن همه حدود از آن سلب شود ظاهرا تنها نداشتن حدود زمانی برای علت اول بودن کافی به نظر میرسند. حتی اقل از استدلال تو چیزی بیشتر از این بر نمی آید و بقیه حدود با واجب الوجود بودن منافاتی ندارد مومن، اگر واجب الوجود محدود باشد به این معنی است که برخی کمالات را نداشته باشد و نداشتن همه کمالات به این معنی است که او فاقد ای از وجود باشد و فاقد ای از وجود نمیتواند بالاترین مرتبه وجود باشد ناباور که به نظر گیج شده بود پس از کمی مکس گفت فکر میکنم همه اینها که گفتی یک معنی دارد مؤمن یعنی چه که یک معنی دارد ناباور نداشتن کمال و محدود بودن و فاقد ای از وجود بودن را به یک معنی گرفتی که اشکالی هم ندارد به یک معنی بگیری حال معنی حرف تو این میشود اگر واجب الوجود محدود باشد به این معنی است که محدود است و محدود بودن معنیش این است که محدود است و کسی که محدود باشد نمیتواند نامحدود باشد. این که اصلا استدلال نبود. چه کسی گفته که واجب الوجود باید در بالاترین مرتبه وجود باشد؟ مومن. وجود دارای مرتبه است و به قول برقی فلاسفه مسلمان وجود مشکک و مرتبه مرتبه است واجب وجود بالاترین مرتبه وجود است. در سلسله مراتب وجود هر مرتبه از وجود نسبت به مرتبه بالاتر از خود محدودتر است، یعنی نسبت به موفق خود ضعف وجودی دارند. حال اگر واژبول وجود محدود باشد، لازم می شود که بالاتر از واژبول وجود هم وجودی باشد تا وااجبول وجود نسبت به آن، ضعیف و محدود باشد. ناباور می شود یک جور دیگر همین را بگویی؟ معمن. ببین وجود دارای مراتاطبی است، مثلا سنگ و خاک در مرتبه پایینتری از گیاه و گیاه در مرتبه پایینتری از حیوان و حیوان در مرتبه پایینتری از انسان قرار دارد. سنگ محدودتر از گیاه هست، چون رشد نمی کند. و گیاه محدودتر از حیوان است چون حرکت نمی کند و حیوان هم چون فکر نمی کند محدودتر از انسان است ناباور با ناباوری به مؤمن نگاه کرد و گفت تو با یک معیار خود چیزهای مختلف را در ذهن خودت مرتبه بندی کردی و آنگاه نتیجه گرفتی که چون انتظار داری واجب الوجود در مرتبه باراتری قرار داشته باشد پس باید نامحدود باشد. اگر معیار را عوض کنی ای بسیاری از حیوانات محدودیت کمتری از انسان داشته باشند و بسیاری از گیاهان محدودیت کمتری از حیوانات داشته باشند و بسیاری از اجسام بی‌جان محدودیت کمتری از گیاهان داشته باشند مثلا اگر معیار تعداد حس ها باشد حیواناتی همچون کوسه ها که توانایی تشخیص میدان های مغناطیسی را نیست دارند یک حس از انسان ها بیشتر دارند و انسان ها نسبت به آنها محدود ترند. بسیاری از گیاهان بدون وجود انسان ها و حیوانات می توانند با فوتوسنتز به زندگی خود ادامه دهند. در حالی که انسان و حیوانات بدون گیاهان همه از بین می روند. اصلا اگر هم فکر کنید که واجب الوجود از لحاظ ای بالاتر باشد با این تو، فقط کافی که تنها یک توانایی نسبت به توانایی انسان ها و دیگر موجودات اضافه تر داشته باشد اینکه به کلی نامحدود باشد دیگر یک نتیجه گیری غیر لازم است یعنی هم می تواند در یک مرتبه بالاتر قرار گیرد و هم می تواند هنوز محدودیت داشته باشد در مجموع باید بگویم نمیفهمم چرا به این مرتبه بندی ذهنی خودت اینقدر اصالت داده ای؟ و تصور میکنی واقعا در جهان خارج از ذهن تو چنین مرتبه بندی در بین هستی مختلف وجود دارد اصلا اگر هم چنین مرتبه بندی وجود داشته باشد چرا باید فکر کنیم که واجب الوجود را نیز میتوان در این مرتبه بندی جای داد و چرا باید فکر کنیم که وجود او از هیچ لحاظ محدودیت ندارد مومن چند دقیقه فکر کرد. سپس چند یادداشت از جیبش بیرون آورد و نگاهی به آنها انداخت. آنگاه گفت: من باید بیشتر جستجو کنم تا ببینم چرا در فلسفه و منطق اسلامی تشکیک یا مرتبه بندی وجود را امری واضح می‌دانند. راستش الان که فکر می کنم می بینم خودم دلیلی برای اینکه ثابت کنم وجود یک انسان ذاتا در ای بالاتر یا پایینتر از وجود یک سنگ قرار دارد ندارم. تا حدی میتوانم قبول کنم که این دو وجودهای متفاوتی داشته باشند. اما نمیتوانم دلیلی پیدا کنم که وجود این دو را ذاتا قابل رتبه بندی دهد و یکی را ذاتاً بالاتر یا پایینتر از دیگری بدانم. رتبه بندی من بر اساس یک معیار صورت میگیرد و این معیار را به قول تو خودم انتخاب میکنم. اگر معیار دیگری انتخاب کنم و مثلا سختی را معیار قرار دهم سنگ در رتبه بالاتری قرار می گیرد اگر ثبات ترکیب شیمیایی را معیار قرار دهم سنگ دارای ثبات بیشتری است و میتواند تواند سالیان بسیار درازی را بدون تغییر بماند حالانکه که تعادل های شیمیایی و ثبات ترکیبات بدن یک انسان بسیار سریعتر از یک سنگ رو تغییر و زوال میگذارد. اگر این معیارهای ذهنی را کنار بگذاریم حسیه یک سنگ به همان اندازه وجود است که هستی یک انسان مؤمن ناگهان چشمش به نوشته‌ای بر روی یکی از کاغذهایش افتاد و گفت بله اینجاست یادم آمد دلایل دیگری هم وجود دارد تا نشان دهد واجب الوجود محدود نیست میشه میشنود مؤمن محدودیت یعنی نقص وجود محدود یعنی اینکه این مقدار را دارد و آن مقدار را ندارد وجود محدود باید برای رفع نقصش به دیگران محتاج باشد واجب الوجود وجود محض است و به چیزی محتاج نیست پس نمیتواند نقص داشته باشد ناباور باز هم از یک پیش فرض ای استفاده کرد به قول تو نقص یک شی یعنی اینکه آن شی چیزی را نداشته باشد آن چیزی که ندارد تنها در ذهن من نقش بسته است من هستیم که در ذهن خود یک شی را در کنار شیع های متعدد تصور میکنیم و سپس میگوییم که این شیء نسبت به تصور ما ناقص است مثلا به نظر من این میز یک پایه کم دارد چرا که من میتوانم آن را دارای پنج پایه تصور کنم حتی میتوانم بگویم که این میز بیست پایه کم دارد یک گلدان هم بر روی آن کم است در زم 5 متر مربع نیز کم دارد تا به کمال برسد همچنین میتوانم بگویم که این میز در کمال مطلق است چرا که تصوری که من از میز کامل و بی نقص دارم دقیقا همین چیزی است که این میز هست میبینی که نقص و کمال فقط در ذهن ماست هر چیز هر چه چی که هست و به هر صورت که هست وجود محز است و غیر از آن هر تصوری هم که از نواقص آن داشته باشیم این نواقص همه از جنس ادم هستند یعنی در واقع اصلا وجود ندارند هرچه هست این میز است هرچه این میز ندارد فقط در تصورات من است و اگر این تصورات من از بین برود یا خود من از بین بروم این میز دیگر هیچ نقصی ندارد در اینجا تو از کلمه حدود یا محدودیت به دو معنی استفاده کرده ای. معنی اول همان معنی مورد بحث ما در تعریف ماهیت بود. یعنی داشتن حدود و اندازه های مشخص و کیفیات معین یا به عبارتی همان چیزهایی که میشد با آنها شیء مورد نظر را تعریف کرد. در این معنی از کلمه حدود ما از آنچه در تعریف و توصیف و توضیح ماهیت شیع می آید به حدود تعبیر می کنیم. یعنی حدود همان چیزی است که شیع هست. اما در استدلال اخیرت محدودیت را به معنی نقص به کار بردی. یعنی حدود را به آن چه شیع نیست و نه آن چه هست تعبیر کردیم. مومن فکر نمی کنم این دو عملا فرقی با هم داشته باشند. ناباور وقتی محدودیت را به معنی نقص بگیریم نتیجه این می شود که هر چقدر نقص کمتری داشته باشد محدودیتش هم کمتر باشد. مثلا اگر یک میز به جای سه تا پایه چهار تا پایه داشته باشد طبعا نقصش کمتر است. پس محدودیتش هم کمتر است. حالان که محدودیت در معنای اول که به معنی داشتن کیفیات و حدود مشخص بود، هیچ ارتباطی با ناقص یا کامل بودن نداشت. یک میز با پایه حدود خودش را دارد و یک میز با چهار پایه نیز حدود خودش را دارد. نمیتوان گفت یکی حدود کمتری از دیگری دارد و یا کمتر از دیگری محدود است. محدودیت به معنای اول هیچ ارتباطی به نقص و کمال که تنها مفاهیمی ذهنی هستند ندارد حدود به معنای اول هیچ ربطی به بودن یا نبودن ذهن نقص یا به ندارد و چه ما باشیم و چه نباشیم این میز حدود خود را دارد حدود به معنای دوم یعنی به معنای نقص بستگی به وجود ذهن نقص یا به مناطون دارد اگر ما باشیم و ایرادی به این میز بگیریم و نقصی به آن نسبت دهیم این میز ناقص است و اگر آن را کامل بدانیم این میز بینقص است اگر تصور و تخیل من و تو نباشد اصلا نقصی در عالم واقع وجود ندارد و هر چیز، هر چه که هست و هر حدودی هم که دارد هستی محض است پس توجه داشته باش که هستی محض بودن با محدود بودن منافاتی نداره. مؤمن با انگشتانش به میز ضربه میزد و فکر میکرد. بالاخره به ناباور نگاه کرد و گفت اجازه بده بقیه بحث را هفته بعد پی بگیریم. ناباور باشد من هم خسته شده هم. گرامیان همینجا در صفحه 79 فایل آوایی هفتم از کتاب برهان علیت پایان پیدا میکنه تا درودی دیگر به